همیشه یه شخص. همیشه یه شخص مادی. همیشه یه شخص مادی. همیشه یه شخص مادی. همیشه یه سلام عليكم خدا قوت خدا حفظتكم نا الحمدلله شما چه سیستم دروشirmek امام عصر چیکار کنیم امامان بدی رو نپذیره بعد از دیگه اگه دا آنلاین دارید شما گویا بله هامون خودشون داره حتی با, با اینجا که بس نمیشه اینجا بس اگر لینک این باشه اینجا میتونم بس اگر لینک تا این درسه آقای میشفی با شما هستن اگر بی گروهاتم دارید من واسه نه بی گروهاته نه روی رو آپارات با روی رو ایتا مستقیماً میتونه خودتون بس با همین گوشی می‌گیریه اگه بس کنید گوشی خیلی دردسج اون درمحزار بگذارید خیلی گوشی راحت این میکروفون میده ولی برو چیزی شو خیلی بزرگتون دیدیم ما گفتیم فوروس ما گفتیم. سیتو نه خب هر کسی صحبت می‌کنه به هست. صبرم هم هست تو احتیاجتون است. این چیزا با اول چیز رو بگم؟ قاری قاری؟ آقای خراسان شما قرارت میتونی؟ شی قاری مونی که از میخونه اول؟ نه قرارت میگه نه مشاله اهل قرآن کسی نمیخونه ایتوانه انجیل روی نمیخونه بخونید صفر پیدایی میرسه اون موقع به همه دیگه تا اینجا چی میسته؟ من به خاطر اسمش رو نوشتم نه. تو ساعت ساعت این بده. میگه سست تو زیپ کنم. اصلا هذیک اینکه تو هم دو جای برای اشکال کردن زیاد میشه. فضا یه سوالات میمونه. وعانه سی و پنگ دیگه یا دقیقه است. نمی همه. معمولاً تو از 40 دقیقه بحث اخیراً شده. حالا آید دکتر نشاد دکتر سلام سلام خوب است زیر کلمه که بر امام بعدی رو قبول ما داشتیم خدا رحمت کنه برای گراوی رو تاس شدیم خدا رحمت کنه ان همه خدا شما مسکین و همه رنگی گان با چهل دیر تا زمان براتون تو توجی جواب برای زیاد هست دیدگاه استهواما استهقنارت چون چهل یکی بیست دیو اونارت کنم خوبه بعد اگه لازمه یه راهبر نه چیزم ها با هم سمید احالی شما خوبیست باز بان شما خیلی برمان شما خوبیست باز بخیل بسید نشون داری میده؟ من دارم آن خبیل دارم برای همی پروسیدم تاگه اشتماعیم خبیل دارم هم گفتم باید بگی چی داری؟ شما چرم کنیم شکرم خبیل <تصفيق> این, این کار الين 500 كانه كان بس ان خودشو annen aajiga ne chatini آقای قلی زاده بیایید چه آقای چرا رفتید اون عقب خب از قازاد شما صف تشکیل بدید جلو چراشبیدید آقای فاقیانی آقای روزی بخیر خانم شادمانی هستن بچه‌ها من دفاع مقدس دیگه یالا نندازید یالا الله دودا سوند اول علی اصلن প্রফেসর داره بچه‌ها دانشکده کمپیدا این جامعه کمی بزنید آها خوشگوار دو نفر شما نگران <تصالت> <تصالت> سلام دیالوگ همون همون همون همون همون نداره نه. از دو فیلمه قرآن جدید من خودم قرآن به خونه می‌خوام. شغل شما قتش کردی نمایش نمی‌دین. نه هر وقت من شما شد داریم. یعنی قرائت قرآن می‌کنید؟ همینطور. آقای قلی اینجا میخوان آقای باقری. دوربین همای تا آیه قرآن می‌خواید بخونید آقای تا آیه از باقری خاصش. پنجم سفر پیدایی بخون. تو هم می‌خونن. آدرس قرآن که میاد. بله ما این که که بنا نیست بخونیم که. یه بحث مرتبط با چشمه آقای نه نه، همین. اغای دکتر دبیر, دبیر هست من ارائه کانتای دکتر رحمت اله هم ناغیب هستن. اولیش آقای دکتر صحبت. بعدش بازشمنده حقیقی و آقای دکتر. اگر با هم زمان داریم. تا بعضی از دوستانش به. هر خاصیت آماده نیست. ولی بحثی که هست می‌کنیم چقدر می‌آویش، آویش میاد. تو خیلی نهایتا نصب نکانت رو. که نهایتا چهار پایین دیدی نصب کنیم. بعد استادیوم خیلی بیان بیاده چواری باید اولی که آن باید که چه خبر جمع ادیان رو مزواجه واقعا هم ایجاد الان از وقتی آقای مبههدی مبههد فرقی مبههدیه رو افتاده بوده دیگه فرقی مبههدیه که داشتیم در توی تاریخ بوده دیگه این تجید می کنید واقفهی برای امام عصر رو اینا رو بریم آقای بعدش یه ماشین سیاه بیان ما رو ببرن شرا ماشین سیاه با گو می‌گم حالا تقریبا می‌خونم ببرم چند میدونم که چند نفر آنلاینه چند نفر برخطن اجازه این انظرا ممكن تشيكوا بشان ب. باشو تو سلام علیکم هر جلو بشین لطفا. هاي عابد بفرمایید جلو لطفا. سلام علیکم. بفرمی. سلام علیکم. یالا یالا یالا یالا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 ببین آین یارسان چه میکنه دیگه شده سلام علیکم آقای حبیبی آقای حبیبی جلوتر بشین که میکروفون باشه برامون قرآن بخونید که شروع کنید انجل بخونید انجیل جلوتر پس نداره قرآن نخونید ولی از جلو بشینید چون یکی با سیده می‌زنیم تا چی؟ یه کاری کنیم جلویش. یا نه؟ یا نه؟ خدا باد باد باد باد باد باد باد باد باد جهت سلامتی و تاجید در فرج مولا و صاحب من زمان سلواتی هدیه کنیم ایوم شهادت حضرت صدیقی تاهر است امیدین که خدا به دعای بر فرج و ظهور امام عز علیه و السلام و توسط اون حضرت و سایر معصومین امر فرج امام زمانمون مقدر بفرماید به برکت سلوات دیگری بر محمد و آلیم اللهم محمد و آلیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف ميم م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم والاولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل <تصفيق> محمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد و اله الطاهرين <تصفيق> اللهم علی محمد و محمد بقیت الله في العربين اللهم صل عليه و عليهم لا يقوى على الصاغ غيرك و جعلنا من خیر شیعتهم آمین آمین یا رب العالمین در جلسه مبارکی که در خدمت ععز گرامی هستیم بناه هست یکی از مهمترین مباحث و ممیزات شیعه امامیه از سایرین از مسلمانان مورد نقد و بررسی قرار بگیره از اونجایی که عنوان جلسه ما بررسی قدیمیترین کتب مربوط به قیبت و مهدویت هست لازم هست بنده مقدمتن نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم تا مقدمه ای باشه که از محصر عیز، عیزی گرامی جناب آقای دکتر موحدی در جایگاه ارائه دهنده معاون محترم آموزیشی پجوریشی دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه هدیان و در مقام نقد هم از نقادی های آلمانی برادر عجمندم جناب آقای دکتر رحمان ستایش استفاده خواهیم کرد معاونه آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قهر برنامه مون با این سین پیش خواهد رفت که انشاءالله حدود چهل دقیقه از محصر جناب آقای موحدی استفاده خواهیم کرد و ناب اقتضاع مباحثی که ارائه خواهند فرمود جناب آقای دکتر رحمان ستایش هم تا حدود چهل دقیقه زمان دارن و بعد حدود 20 دقیقه رو هم اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ حضار گرامی یا دوستانی که برپرد با ما همراه است. و بجاست که تشکر کنم از حضور همه اعزی گرامی از محسسه امامت و دوستان و برادران بزرگوارم از دانشگاه به ویژه رئیس محترم دانشکده مذاهب اسلامی و از میکنم رئیس محترم دانشکده شیع شناسی آقای دکتر لطفی عزیز که زینت بخش مجلس شدند امید این که زحمات همه دوستان ارائه و نقش و نظر عزیزانمون هم مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشد به برکت سلباتی بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد به عنوان مقدمه ارز میکنم که استحضار دارید که غیبت نگاری و نگارش کتاب در رابطه با مکتوبیت در بین مسلمانان به درازای عمر تاریخ و از زمان حضور اهل بیت مستلات و, و سلام سابقه داره. تا پایان قرن پنجم هجری بالغ بر پنجاه مهدویت و غیبتنگاری در جهان اسلام صورت گرفته که شش غیبتنگاری از طریق واقفیه به ما رسیده و منابع موجود دو نفر سنی در رابطه با محتویت کتاب نوشتند و الباقی از شیعه هستند 18 نفر از این الباقی حدود 50 نفر قبل از قیبت کبرای امام زمان علیه السلام کتاب نوشتند در رابطه با قیبت و 16 نفر در طول قیبت سغراه و الباقی هم تا پایان قرن پنجم هجری از اونجایی که بحث غیبت و مهدویت در منابع نخستین از اصالت و اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار هست اهتمام جدی رو پیش از امامیه بین واقفه نسبت به قیبت نگاری میبینیم طبیعی هست که اون چه که در منابع نخستین می همه روایات احادیث و مستندات تاریخی حکایت کننده از طرح بحث غیبت در زمان حضور معصومین و السلام نیست کما اینکه مرحوم نعمانی در القیبه خودشون ضمن اینکه نود روایت رو نقل میکنند می نویسند که این نود روایتی که من نوشتم فقط بخش اندکی از مجموعه روایات موضوع قیبته که در اختیار مردم هست و اونها روایت میکنند در حالی که میدونید ایشون در اثر غیبت سغرا این کتاب رو نوشته هر یکی از فرق و مذاهب اسلامی از کیسانیه و ناوسیه و واقفیه که بحث مهدویت و غیبت رو بهش اشاره کردن انگیزه هایی دارند که این انگیزه ها متفاوت هست از انگیزه امامیه نخستین در نگارش این کتب به همین اعتبار امروز بنا هست که انشالله ارائه برادر ارشمندم جناب آقای مبهدی رو داشته باشیم در رابطه با قدیمیترین قیبت نگاهی واقفیه و تفاوت مطالبی که ایشون در مباحث مرتبط با قیبت ارائه کردند چه فضای تعلیفی ایشون چه فضای انتقال که انشالله از محصر جناب آقای استفاده خواهیم کرد به مدت چهل دقیقه با ذکر سلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و و السلام علی سیدنا و نبینا و المصطفى و محمد اللهم صل على محمد و عالی محمد و عجیل و علیه طیبین و طاهرین و معصومین و مصطفیمین و دائم علی عدائهم بنده هم به نوبهی خودم عرض تشکر و عرض سپاس دارم از همه عزیزانی که در جلسه تشریف فرما هستند و بزرگوارانی که بر... به صورت برخط و خدمتشون هستیم به طور خاص عرض تشکر و ادب و احترام و توازق دارم محضر استاد بزرگوارم جانبای دکتر رحمان ستایش عزیز که بر ما مننت گذاشتند و نقادی این جلسه رو پذیرفتن. بهشون خیلی مقدم میگن و عرض سپاس دارم و همینطور از استاد عرجمند هم میتونه بایدود که باغیری عزیز ریاست محترمه دانش که در دا مذاهب که با توجه به اهمیت موضوع برای این جلسه منت بذاشتن و دبیری اون رو پذیرفتم. من قبل از این وارد بحثم بشم تو این چه دقیقه که فرصت دارم یک نکتهی رو خیلی علاقه مندم تذکر بدم که من مدت زمان طولانیه که مشغول فعالیت های مخلف در عرصه کلام و حدیث هستم دوستانی که مستحضرن میدونم حدود سال نوت با مجلات مختلف و نشریات مختلف من معمولا کار ارزیابی و داوری اینها رو انجام میدادم و نگاه علمی من به تعریفات دیگران به دو بخش تقسیم میشه یکی قبل از در واقع ارزیابی آقای دکتر رحمان ستاهیش از مقاله خودم و دیگری بعد از اون یعنی من ای رو برای مجموعهی فرستاده بودم داورش اون مقاله های دوتر رحمان ستایش بودن مقاله ضعیفی بود من ارسال کرده بودم برای اون نشریه و اقلات متعددی داشت استاد وقتی که اقلات رو گرفتن خب رقمش قابل توجه بود من خودم اگر دعاوری مقاله ای بودم حتما ردش میکردم ولی آی دکتر خیلی بزرگوارانه کمک کردن به ارتقای اون مقاله و اشکالاتش رو متذکر شدم و این اجازه رو دادم که من بتونم اون مقاله رو دوباره بازنویسی بکنم و به گمانم بعدن خیلی تغییر کرد و منتشر شد. بعد از اون های من خیلی تغییر کرد مسئله نقد و نقادی و امیدوارم هم که این جلسه هم باز برای من این خاطره خوب وجود داشته باشه مطالبی که من عرض کنم با نقادی آقای همراه بشه تا اینکه هم خودم بتونم پیشرفت بکنم و هم که یک درسی بشه و الگویی بشه برای همه عزیزانی که در در واقع وظیفه نقادی در جایگاه نقادی قرار می گیره خب ما اون اندک بعد مطالبه مهمی رو بگیم و طبیعتا اگه بخوایم همه اون مطالب رو ذکر بکنیم از 40 دقیقه بیشتر میشه لذا خواهش میکنم اگر ممکنه تصویر صفحه نمایش بند رو در واقع نشون بدیم به عزیزان که موضوع ما همون که مستقر هستین که همتایین تکنولوژی واقعه است و تحلیل خب ما قبلش باید طبقات واقفه رو بشناسیم یه تقسیمی من خودم ارائه دارم برای این تقسیم که واقفه رو به دو دوره تقسیم میکنم واقفه نخستین و واقفه واپسین که واقفه نخستین سه نسل تجربه کردن نسل اولشون که در واقع نسل تأسیس اونها هستش معمولا کسانی رو شامل میشه که شاگردان امام صادق علیه السلام بودند و محضر نورانی امام کازم رو هم درک کرده بودند و سالهای پایانی عمرشون رو در زمان امامت امام هشتم صلوات الله علیه گذرانده بودن و جریان وقف رو در واقع اونها تأسیز کردند که خب اینها تعدادشون در واقع تا یه حدودی برای ما مشخص هست اسامیشون رو تقریبا میدونین و قریب به اتفاق اینها در زمان حیات امام هشتم از دنیا رفتن که اینها واقفه نسل اول است یعنی واقفه نخستین نسل اولشون که بهشون ایشون میگیم دوره تاسیس واقفه نخستین رو واسطیم حما یه توضیحی بدم که ما از 183 که شهادت امام کاظم صو الله علیه است تا 260 که شهادت امام عسکری صو الله علیه هست. این تا زمانی که آموزه غیبت توسط مذهب رقیب پی گرفته میشه این رو به عنوان واقفه نخستین نامگذاری کردیم حالا به دلایل مختلف که شاید بهش برسیم و بعد از اون رو واقفه رو با من واقفه واپسین ازشون یاد کردیم که بعد از دیویست که حالا امامیه هم برای خودش آموزه غیبت رو به طور داره پیگیری میکنه و واقفه متوجه میشه که همه آن آن ای که تا حالا جمعوری کرده بود برای قائمیت امام کازم برای غیبت امام کازم همه اونها به تمامی در واقع بیانگر در واقع غیبت امام عصر سرات الله علیه و خب یک در واقع تغییر خیلی جدی توی واقفه از این دوره بعد رخ میده که دیگه ما میبینیم واقفه به سمت افول میره تا اینکه نهایتا نهایتاً تا ست پنجاه سال بعدش نهایتاً دیگه به طور کامل از به این میره نسل دوم واقفه تو واقفه نخستین در واقع گروهی هستن که خیلی کم امام کازم سرات الله علیه رو درک کردن امام صادق رو که اصلا درک نکردن. ولی نسل اول واقع رو خوب درک کردند و از اونها در واقع خصس حدیث کردند که به اینها میگیم دوره تدوین چون گروه اول فرصت نکردند تو اون کشمکش های ابتدایی مذهبوق کتابی رو در این جهت تدوین بکنند هر آنچه که در زمینه غیبت به طور اختصاصی تدوین شده مال نسل دومه که ما اتفاقا امروز میخوایم که یکی از همین نسل دومی ها رو بررسی بکنیم. نسل سوم که بزرگان اونها مانند حسن بن محمد ابن سماع متوفای 263 در واقع شاید فرد شاخص اونها باشه نسل تثبیت هستن و بعد نسل چهارمشون که شاخص اونها حمیده بن زیاد کوفی متوفای 310 هست و نسل پنجم هم که دیگه دوره افول اونها از تقدیم ما بعد از اون خیلی چیزی حداقل در امامیه از واقعه به طور جدی نداریم خب از این نکات عبور بکنم فقط یکی هم ریز هست شاید شما خوب دقیق نبینید کسانی مثل علی بن ابی حمزه بطائنی عثمان بن عیسی در ابتدا زیاد ابن مروان قندی کرام خصعمی یا همون عبدالکریم بن عمرو حنان بن سدیر صهیر رفید و بن علی منصور حمزه بن بزید ابن مکاری و عمر ابن رباح القلا اینها واقفه نسل اول هستن که خب طبیعتاً اینها تکنیداری در باب غیبت نداشتن نسل دوم اونها که در واقع مهمترین گروه اونها هستش که عبدالله ابن جوالت ابن حیان رو شامل میشه علیه ابن حسن تاتری رو شامل میشه احمد ابن الحسن ابن اسماعیل میسنی رو از نوادگان میسن تمار رو شامل میشه اینها کسانی هستن که نسل دوم واقعه هستن و اینها رو او بردن به تدوین در جهت در واقع نگاری که کسانی مانند محمد ابن عباس ابن عیسای قاضری در این زمینه کتاب داره خود به کتاب داره پسر علی ابن ابی حمزه ال کتاب الملاهم داره و اینها سعی کردن که آموزه های مهدویت و غیبت رو گردآوری بکنن لذا ما اگر بخوایم توی نسل دوم ببینیم چه کدومی که از اونها به طور خاص تک با عنوان غیبت داشته حالا اینها بودن کسانی که نگارش غیبت داشتن من لازم می توضیح بدم ولی عنوان اصلشون غیبت نیست مثل چرام که در کتابش پانزده روایت مهدوی سرشار از مباحث غیبت داره و قابل بازسازی هم هست از نسل اول هم هست ولی عنوان کتابه او قیبت نیست بنابراین دقت بکنید اگر ما میگیم کهانترین قیبت نگاری، منظورمون کهانترین میراس واقفه نیست بلکه کهانترین میراث واقفه در یک تکنگاریه در یک کتاب مستقل غیبته. که چهار نفر در نسل دوم تقریبا در عرض همدیگه کتاب در غیبت نوشتن علی بن عمر اعرج ابراهیم ابن صالح عماتی حسن ابن علی تایی یا همون تاتری و عبدالله ابن جبله این چهار تا که تقریبا میتونیم بگیم هم در عرض همدیگه هستن هم طبقه هم هستن کتابی با عنوان الغیبه دارن که در میان این چهار تا فقط کتاب عبدالله ابن جبله قابل بازسازیه بنابراین این وقتی میگیم کهن ترین غیبت نگاری واقفه یه تسامحی توش هست و اونم اینه که باید این قید و اضافه بکنیم که اون, با اون که قابل بازسازی برای ما باشه چون اون ستای دیگه برای ما قابل بازسازی نیست که عنوان کتاب عبدالله ابن جباله از صفح فل غیبه بوده که مرحوم نجاشی هم تصریح میکنن که این کتاب بر اساس مکتب واقفه نگاشته شده خب عبدالله ابن چه کسیه؟ عبدالله ابن جوالت ابن حیان ابن عبجر کنانی که خب یک محدث سغست و جد او از اصحاب امیر المومنین در سفین بوده و حتی جد اعلاش ابجر هم بر بعضی از گزارش های خیلی از یاران رسول خدا بوده بنابرای این نسلی هستند که به لحاظ علمی نسل پرسابقهی هستند از در واقع ابجر و هیان هم فقه های بزرگی در طول تاریخ داشتیم که حالا جایی بحثش اینجا نیست اما اون چیزی که خیلی برای ما مهمه اینه که عبدالله ابن جبلح دو تا شأن داشته عبدالله ابن جبلح ابن هیان متوفای و نوزده دو تا شأن مهم داشته یک محدث پرکار بوده یکی شأن تعلیف که خب فهرست آثار اون مضبوط هست در رجال شیخ در خسائث قام فهرست و فهرست نجاشی و دیگری نقش او در انتقال حالا عددش رو یادم رفته بعد از اینجا ببینم که عددش چند تاست تعداد آثار زیادی رو من یک بار سرش کردم نام او رو در فهرست نجاشی و فهرست شیخ آثار زیادی رو او انتقال داده که اتفاقا از اصحاب امام صادق هستمانند معاویه ابن وحب زریح المحاربی عبدالله ابن بکیب عبدالله ابن سنان ایس ابن اعین حمید ابن شعیب سلام ابن أبي امره خراسانی، محمد ابن مسعود التایی، علي ابن امراهان خزاز، علي ابن يختيم كه اتو از اصحاب امام كاظم هست، او در واقع آثار اینها را به نسل بعدی انتقال داده. پس بنابراین عبدالله ابن جبله اولان یک محدثی است که شان انتقال خیلی ویژه ای دارد. من به توضیح راجع به شان انتقال و شان تعلیف بدم برای از که شاد آشنا وشان. یک محدث زمانی که کتابی را از شیخ خودش اجازه میگیره که حالا اون کتاب میتونه تألیف خودمون شیخ باشه میتونه تألیف شیخ شیخش باشه فرقی نمیکنه زمانی که اون کتاب رو اجازه میگیره و به شاگردانش و به نسل بعدی اون کتاب رو اجازه نقل میده در اینجا در واقع اون شنه انتقال داره اثری از پیشینیان رو به پسینیان انتقال داده است طبیعتا اون نسخه کتاب رو داشته به شاگردش داده استنساخ کرده احتمالاً سماع قرائتی هم بوده و نشانه دیگه‌ای که نشونه دهنده اصالت اون نسخه باشه اون رو انتقال میده به شاگردش برای این وقتی شاگرد میخواد در واقع کتاب رو نقل بکنه لازمه که اسم این عبدالله بن جبله رو بیاره یعنی بگه حدسن یا حدسن یا اخبرن یا اخبرن, یا اخبرن و عبدالله ابن جبلت ابن حیان و بعد او از شیخش یا شیخ شیخش گزارش بکنه برای این اسم عبدالله در روایت میاد در حالی که او مؤلف نیست او فقط انتقال دهنده این میراسه خب معمولا کسانی که شن انتقال خیلی جدی مثلا حسن ابن محمد ابن سماعه مثل خود عبدالله با سازی آثارشون دشواره چون ما وقتی با رواات اینها مواجه میشیم همیشه مسئله اینه که این تو کتاب خودش بوده یا نه تو کتاب استادش بوده اونو انتقال داده این مشکل با عبدالله الله جبل هم داریم که البته تا حد زیادی قابل رفره که توضیح خواهند شن دوم شنه تعلیفشه که خب خودش هم آسایی رو نگاشته از جمله از صفه که به نظر میرسه که قدمیتنی و و هم چنین غیبت نگاری توضیحی من بگم آثار مهدوی در آثار مهدوی امامیان پیشتازن علی ابن یختین که قطعا قبل از وقف قبل از وقف در واقع از دنیا رفته. چون در زمان حیات امام کاظم از دنیا رفته علی ابن یختین کتابی داره با عنوان ما سئل عن صادق فی که خب این نشون میده که دست کم آثار مربوطه به مهدویت رو امامیان پیشتازن اما غیبت نگاری رو به طور خاص از اونLambda که شروع کرده باشه متوفای نوزده همزمان با او یا اندکی بعد از او در واقع خیلی سریع در پاسخ به شبهات واقفه امامیان دست به کار نگاشتن کتاب الغیبه شدن علاوه برای اون شبهه‌ای که کلبرگ مطرح میکنه که شما امامیان در باب غیبت در زمان حضور امامانتون مطلبی ندارید با توجه به کتاب الغیبه ابی سید بن هشام ناصری متوفای 2020. که فقط یک سال سال وفاتش متأخر از عبدالله ابن جبل است این شبه به راحتی پاسخ داده میشه که اتفاقا اینجا هم با ابییس کار داریم که اسمشو به همین جهت آوردم خب من قبل از اینکه برم سراغ بازسازی کتاب اسفح فیل غیبه و توضیح بدم دارن تنتون میگم که وقت کنم اون بگم اول هدف کار معلوم شد ما چرا اومدیم به سمته به چه درد ما میخوره کتاب اسفح فیل غیبه که بازسازی بکنیم ببینید ما با چند تا شبهه مواجهیم با چند تا ای بگیم مساله تره با چند مسئله مواجهیم و اونه اینه که ما رو همیشه متهم میکنن که شما آموزه غیبت رو از واقفه گرفتید و اون روزی که واقفیان در مورد غیبت بحث میکردن شما مخالف غیبت بودید این رو به طور خاص کلبک توی همون نگاشته دوران کارشناسی ارشدش در واقع با عنوان فرام امام یا تو اسناعشری ها به طور خاص این رو کلبک مطرح میکنه من با ادب خودم حرف کولبرگو میگن که شما امام 11م تون از دنیا رفت، فرزندی نداشت، گفتید خب چیکار کنیم؟ لابود رفتید منابع عامه رو دیدید که امامان 12 نفرم گفتید ای چه خوب، ما هم پس قائل بشیم به امامت امام 12م که اتفاقا قائبه یعنی چون ندیدیمش پس قائبه و شما از امامیه تغییر نام دارید به اثنا عشریه. و قبل از این شما چی داشتید که نشون بدید که به مسئله غیبت واقف بودید و قبول داشتید و اعتقاد داشتید و اون موقعی که واقفه میگفتن غیبت شما نخر میکردید واقفه رو و بعد ها شما این آمدید از واقفه وام گرفتید و مکتب خودتون رو پیریزی کردید و موعصی از این دست که غیر از کلبرگم دیگران همین حرف رو زدن که حالا جای بحث مفصلش اینجا نیست خطت ما که داریم کتابو جمعاوري می کنیم این مساله نیست یک دیگه ای هم داریم که آیا واقعا واقفیان یعنی ما اولا واقعا را از واقفه گرفتیم که به تمامی این سال تو این جلسه تیات نمیخوایم پاسخ بدیم ولی بخشیش خواهیم پرداخت. سانین آیا واقعا, واقعا واقفه اونجوری که بعضی یا تصور میکنن تولیدگر این آموزه بودن یا به عکس واقفه در آموزه غیبت کار دیگه ای کردند که تا الان تا حدودی پنهانه. من آخر قضیه رو اول همین جا بگم که حواسه خوب جمعه خسته نش در هنوزه به نظر میرسه البته این یک کاری یک یا یک کلام پروژهی در مورد واقفه است ما تک تک واقفیان رو هم قاصدشون که قابل بازسازی بوده بازسازی کردیم در نهایت به این نتیجه میرسیم اینو توی از سفر فلقیبه ابن پاسخ میدیم این نشون میدیم که واقفیان نه تنها آموزه تولید نکردن و این آموزه در میان اصحاب امام صادق رواج داشته بلکه اونا حتی آموزه غیبت رو سانسور کردند، فیلتر کردهن و هر جایی که آموزه غیبت با عقاید اونها سازگار نبوده اونا در نگاشته های خودشون نیووردن. یعنی واقفی نه تنها تولیدگره این آموزه نیستن بلکه سانسورچی این قضیه هم. برای نمونه مثلا اینکه که امامان دوازده امامن و اون امام قائب واقع این امام و دوازده هم این امامه این روایتش تو هیچ کدوم از بازسازی های اینها پیدا نمیشه. در حالی که وقتی نگاه میکنیم کنیم با ادله میتونیم نشون بدیم واقعاً این روایات رو در اختیار داشتند یعنی از وجود این روایات مطلع بودند و اینها رو در کتاب های خودشون داخل نکردند چرا چون نمیتونستن به لحاظ کلامی توجیهش بکنند. یعنی هدف ما اینه که واقعاً ببینیم که عبدالله بن جبله در مقام تألیف که داره از سفر رو می نویسه تا اونجایی که به ما رسیده و در مقام انتقال تا اونجایش که ما ازش مطلع هستیم آیا همه روایت های غیبت رو اوورده یا نه طبیعتاً گذینش کرده و اگه گزینش کرده کدوم روایت ها رو برگذینده و کدوم روایت ها رو ترک کرده و چرا؟ بیشتر حد مسئله تحلیل مسئله میخواد به اینجا منجر بشه خب بریم سالاغ باستازی خب یه نکتهی هم من خدمتتون ارز بکنم این کتابی به همت پایجو اسکدی معارف اهل بیت علیهم السلام در حال تألیف هست تحت عنوان بازسازی کتب مفقود حدیثی که امیدواریم تا آخر سال کار تألیفش به اتمام برسه اونجا دیگه اینکه ما بعد این آثار رو بازسازی کنیم چه مراحلی داره چه معضلاتی داره چه گیر و داره به طور کامل توی اون کتاب بحث شده که خب طبیعتاً وقتش این سلام راجعش گفته بکنیم فرض میکنیم که مخاطبین ما تا حدودی با بازسازی آثار مفقود حدیثی آشنا هستن. ما اگه تاریخ صدوق به ابن جبله رو تو مشیخه الفقیح ببینیم تاریخش اینطوریه. پدرش عبدالولید و محمد ابن موسف متوکل از همگری از محمد ابن عبدالجبار القومی و محمد ابن عبدالصحبان از عبدالله ابن جبله. خب این تاریخ خیلی عجیب و غریبه که صدوق در مشیخه الفقیح بوده و جز اینجا در هیچ جای دیگه از میراث امامی ما یه تاریخی نمی بینیم و طبیعتا چون الفقیح هم این طریق به ما هیچ روایتی در باره محتدیات دست نمیده بنابر اینجا یک بمبست کامل داریم ببینیم طریق شیخ رو در فهرست میبینیم خب شیخ در تحذیب و استفسار که به ابن جبله طریق نداره میونه فقط فهرست شیخ شیخ دو تا طریق به ابن جبله داده که یکیش رو از کتاب حومید گرفته یعنی از فهرست حمید گرفته که خود حمید هم واقفیه و حمید از احمد ابن دوکین از فضل دوکین و از ابن جبل فکر می‌کنم اشتباه نوشتم الان بعد چک کنم و بعدی چون این پاورپوینت رو همین امروز صبح من آماده کردم اقلات تایپی توش بعید نیست پیدا بشه الان یکم تردید کردم به اون طریق حمین و دومیش دو که از فهرست ابن ولید داره عکس می‌کنه خب یه گزارش میکنه از ابن عبیجد داره فهرست ابن ولید گزارش میده یه دون از صفار و محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب یا همون محمد حسین زید گزارش می‌کنه از ابن جبل. اون طریق حمید که ما ازش چیزی نداریم تو منابعمون اون تاریخ که برای ما بنبسته میمونه طریق حمول ولید از طریق ابن بعید ما تو بصائر روایت داریم تو کافی روایت داریم تو تهذیب این روایت داریم تو دیگر آثار صدوق هم از این طریق از ابن جبله روایت داریم ولی هیچ کدومشون مهدوی نیست یعنی در باب عواقب فقه هست در فضائل امیرالمومنین در فضائل اطرات هست ولی هیچ غیبت یا مهدویت نیست بنابرین طریق شیخ هم به نخورد بیرین سراغ طریق نجاشی خب طریقی هم که نجاشی مطرح میکنه اون هم طبیعتا ما با این طریق از نجاشی هم روایتی از عبدالله عبدالله جواله تو آسالمون نداریم و بنابراین فهارس ما و مش، مشیخه های ما هیچ کدومشون نمیتونن تو این جهت به ما کمک بکنن راه حل بعدی یعنی بعد از اینکه معلوم میشه که مشیخه ها و فایده ای برای ما ندارن ولی حل بعدی اینه که بریم رو ببینیم اسانید پرتکرار و پربسامد به عبدالله بن جبله که بیتوات یکسان گزارش شده اونها رو بررسی کنیم اگه اونم نباشه طبیعتاً با سازی کتاب بن جبله دیگه امکان نداره ولی خب خوشبختانه اینطور نیست و ما الغیبه نمانی رو داریم که میتونم بگم با کمال خوشبختی که نوزده بار یک طریق واحدی رو گزارش میکنه و اونم اینه که ابن عقده احمد ابن محمد ابن سعی متوفای ستب 33 از ابن حازم القاسم ابن محمد ابن حسن ابن حازم که ابن حازم خودش خوهرزادهی هشام ابن سالمه و این نوهی خوهرزادهی هشام هستش و قبعیس ابن هشام ناشری متوفای دیویست و بیست یکی از محدثین مهم امامی مذهب ماست نوزده بار با این سلسله سند القیبه گزارش می که خب خیلی خوبه و ما هم الان فکر میکنیم که حتما داره کتاب اوبعی سیناره گزارش میکنه ولی اینطور نیست خود نومانی سه بار تاکید میکنه که من دارم از کتاب ابن حازم گزارش میکنم و از این 19 باری که نومانی داره با این سلسله سند از اویس گزارش میکنه 17 بارش گفته میشه حدسنا عبدالله ابن جبله خب این تکرار 17 باره این سلسله سند اونم با قید اخبرنا و حدسنا و اینکه تا ابن یکسانه بعد از اونجالا لا پراکندگی میشه و تازه بعد از اونجالا معننن میشه نشون میده که احتمالا این روایت ها که همگی هم در باب غیبت هست باید ریشه داشته باشه در اصل فهل غیبه اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه که همون تو که گفتیم نعمانی داره این روایات رو از ابن حازم میگیره یعنی خودش میگه فی کتابه من دارم کتاب ابن حازم میگیرم یعنی منبری که الان در اختیار نعمانیه کتاب ابن حازم خب یه نکته ای که خیلی عجیبه توی این یه باری طریقو ببینید به خاطر بس ابن عقده ابن حازم ابیس ابن جبله یه چیز عجیبی که این طریق داره اینه که ما اصلا توقع نداریم که ابن حازمی که خودش مستقیما شاگرد ابن جبلک بوده به واسطه ای از این گزارش کنه و هیچ جای دیگری هم پیدا نمیشه این اگه یه خورده خوشبین باشیم شاید فکر کنیم که اون مثلا حد دسنایه مثلا تصحیف یه واوی بوده اینجا عطف بوده ولی اصلا اینطور نیست و به هیچ وجه این فرضیه کار نداره نکته ای که مهمه اینه که ابن حازم از کتاب الغیبه اوبیس داره این روایتها رو میکیده و اوبعیس ابن هشام ناشری بنابرای فرضیه‌ای که من در ذهنم دارم اینه که همون موقعی که ابن جبله اصفه غیبه را می نویسه احتمالا در جواب ابن جبله او همی کتاب فلقیبه می نویسه که سعی می‌کنه روایات ابن جبله را به نحو گستردهی تو کتاب خودش انکاس بده که این 17 تریخ از این در واقع نشعت گرفته بنابراین یک نکتهی رو دقت بفرمایید بنابراین خلاصه بحث اینه که ابن جبله کتاب رو نوشته، اوبیس روایات ابن جبله رو در کتاب خودش داخل کرده و ابن حازم از طریق کتاب اوبیس به کتاب ابن جبله راه داشته. چرا کتاب ابن رو مستقیم نداشته؟ چون اگر کتاب ابن رو مستقیم داشت لازم نبود که از اوبیس نقل بکنه. چون خودش شاگرد مستقیم ابن جبله است. کسی نگی که آقا اینا چون واقفی بودن، واقفی‌ها هم بودن، کلا هم بودن، اینا هم دوست داشتن. نه نه. ما مفصل می‌بینیم که ابن حازم از ابن جبله گزارش داره نمونه ملاحظه بفرمایید توی اصل سلام که الان هم اصل سلام موجوده که در واقع شما می‌بینید نجاشی و شیخ این طریق میارم براش که ادت من اصحاب انا از ابن اغده از ابن حازم از عبدالله ابن جبله اصل سلام گزارش شده و همین الان اصل سلام موجوده با ده حدیث که اتفاقا نومانی از همین طریق در واقع یک حدیث توی القیبه داره که کاملا با همون حدیث سلام یکیه و کاملا نشون میده که این طریق منتج میشده به در واقع روایتهای اصل سلام بنابراین این فرضیه که ما مطرح میکنیم که ابن حازم خود کتاب ابن جبله رو نداشته یا اینکه حداقل بگیم این کتاب کتاب انحرافی بوده چون برای مکتب وقف بوده و به این جهت رو ترک کرده و اومده از کتاب اوبیس گزارش کرده چیزی که از طریق اسانید متعدد دیده میشه بنابراین نکته قریب اینه که اگه ابن حازم اوبیس رو واسطه قرار میده علتش اینه که یا کتاب ابن جبل در اختیار نداشته یا اجازه نگرفته بوده یا اون کتاب انحرافی میدونسته و نمیخواسته مستقیما ازش گزارش بکنه خب اما خب این که گفتیم بنابر این تحلیل طریق نعمانی اینطوری میشه که نعمانی در الغیبه از ابن عقده داره اجازه میگیره کتاب ابن حازم رو ابن عقده اینجا فقط شنش انتقاله ابن حازم در کتابش این روایت‌ها رو آورده اتفاقا از کتاب الغیبه ابیس گرفته و ابیس هم اول کتاب ابوجلله میگیره نکته که وجود داره که دو تا حدیث هم که فلش می‌میرید و برزدم یه خود سطح هنرش ضعیف این میگی نشون نمیده ولی اگه باش همدلی کنیم بخواد بگه که اوبیس از دیگران هم گزارش داشته به خاطر همینه که دو تا روایت داره که دیگه اونها مستقیما از ابن جبله نیست این خلاصه تحلیل این طریق بیشتر از این وقت نداریم بگیم دو تا طریق دیگه هم نومانی داشته به ابن جبله این آره بریم اصل محتوا چقدر فرصت دارم آید دو تا؟ یک رو فرصت دارم چشم. دو تا طریق هم دیگه نومانی داشته به ابن جبله که مهمه این دو تا به کتاب های ابن جبله منتج نمیشه بلکه به شعن انتقال اون برمی کرده شیخ توصی از کتاب نوستت الواقفه نگاشته یکی از واقفیان گزارش میکنه که یه روایت از ابن جبله از کتاب ابن جبله گزارش کرده که با روایتی که نومانی میاره در واقع مطابقه و نشون میده که ما درست فهمیدیم که این روایت ها مال کتاب ابن جبله بوده که اون گزارش نوستت الواقفه هم برای ما مهمه. اتفاقا شیخ توی الغیبه آثار مهدوی فضل ابن شازان متوفای دویست رو داشته و اونجا فضل از ابن جبله گزارش میکنه که گزارش های فضل از ابن جبله با گزارش های نومانی از ابن جبله کاملا مطابقه و باز یه شاهد دیگه که معلوم میشه که پس ما درست بهمیدیم که این روایت ها در کتاب ابن جبله مندرجون به طور خلاصه طریق تمام طرقی که ما تو بحث مهدویت و غیبت میتونیم به ابن جبلا دست داشته باشیم توی این نمودار خلاصه شده فقط توضیح بدم هایی که با رنگ نارنجی ان اینا که نارنجی در واقع مستطیلای نارنجی رنگ اینا کتابای مستطیل های آبی رنگ های غیر موجودن که نشون میده که به چه نحوی در واقع ما میتونیم با شأن تألیف مواجه بشیم و اون خاکستری‌ها یا هر رنگ ای هست که من نمیدونم چیه اون‌ها هم طبیعتاً انتقال داشتن و اسفار فلقیبه هم که خب محل بحث ماست که با رنگ متمایز داده شده بنابراین ما به اسفار فلقیبه به سه طریق میتونیم دسترسی داشته باشیم یکی گزارش های شیخ از فضل بن دیگری گزارش شیخ از مصطول واقفه و دیگری 17 روایت نعمانی از ابن جبله با طریقی که عرض کردیم این 17 روایت رو برای ما قرار میده بنابراین ما تونستیم نهایتا نهایت با 17 روایت از ابن جبله مواجه بشیم ولی از سوی تعدادی روایت های دیگه از ابن جبله از مهدویت و غیبت موجوده که در کتاب هاش نبوده. او داره آثار پیشینیان رو گزارش میکنه که مقایسه این دو تا شأن یعنی شن انتقال و شأن تعلیف برای ما اهمیت خب این تحلیل به چه نحوی هستش؟ ملاحظه بفرمایید دیگه من علاوه بر خیلی ریز متاسفانه فزت ببینم می‌تونم به یک نحوی درشتر بکنم. بله. ببینید این اینه روایات 17 گانه ابن جبلح رو تو بحث غیبت خب غیبت رو داره دو غیبت بودن رو داره اینکه یکی از غیبات طولانی طره رو آورده اینکه ظهور در پایان غیبت دومه اینکه حکی ادعا کنه که حضرت وفات کرده دروغگوه یا ادعای باطلیه و انحراف گسترده و البته ارتباط موالی با حضرت در واقع اینجا گزارشه شده به گمانم اون قسمت آخرش که ارتباط موالی با حضرت در زمان قیبته اگه درست تو ذهنم باشه فقط تو تک های واقفه دیده میشه و این یه خورده من رو نسبت به این آموزه الان دوچار تردید کرده ولی علی حال ما تو آثارمون داریم میده بورد رو در مورد هم نکاتی گفته که خیلی مهم نیست در باب امامت عامه همیشه چیزایی ازش برداشت میشه از جمله اینکه در واقع تکذیب زید و اخبار از قتل او و این موارد هم یا تعبیر آیات به امامت که در خلال گزارشات هیجده گانه او هست اما آنچه که برای ما مهمه این موارد راجع به غیبت که عرض کردم با بیشترین بسامت خود اصل غیبت گزارش شده که هشت مورد داره گزارش می‌کنه و دو مورد هم ادعای باطل وفات حضرت که البته اونها خب این رو تعبیر به امام کاظم علیه السلام و برایشون این روایات خیلی مهمه اما اونچه که مهمه مصطبه بعدیه که اگه ملاحظه بفرمایید توی است که این جدول جدول روایتهای در واقع روایت پراکنده ادن جبل که در انتقال بوده که شما اونایی که زرد رنگ هستش ملاحظه میفرمایید که با تفکرات وقف سازگار نیست گیدا 12 تن هستن امامان اینکه واپسین امام در واقع قائب میشه و قائمه و اینکه قائم کسیه که در عین اینکه عمرش خیلی طولانیه جوانه و این خب با محاسن سفید امام کاظم سازگار نبوده و همینطور با هفتمین امام بودن امام کاظم با بعضی از تیپ هایی که در واقع قائل بودن که امام هشتم به بعد رو وسی و خلیفه امام میدونسن لذا ملاحظه میکنیم این تا آموزه در اختیار ابن جبله بوده یعنی حداقل در آثاری بوده که او اجازه نقل داده او انتقال داده ولی اینو در تکنگاری خودش نیابرده اون آبی چیه؟ اون آبی ها قسمت هایی هست که ابن جبله در کتابش نیابرده ولی مخالف با وقف هم نیست مخالف با واقفه هم نیست و اتفاقا موافق با دیدگاه ما هم هست نشون میده که آموزه غیبت، قبل از ابن جبله در میان پیشینیان او و مشایخ او وجود داشته روایت هایی که او از پیشینیان خودش انتقال داده توش آموزه غیبت مندرج بوده و به دست ما رسیده یه نکته من تذکر بدم ببینید در گذشته وقتی کتابی رو انتقال میدادن معمولا استثناء نمی کردن استثناء کتور ظاهرا از زمان ابن الولید متوفای 343 هجری قمری آغاز میشه و او بر اسانید نوادرالحکمه 29 فقره رو استثنام میکنه و بعدش دیگه تواش تو فاز استثنام تا خود ابن الولید چهار نوع رو مطرح میکنه صدوق بداها یک روایت کتاب علی ابن ابراهیم رو استثنام میکنه ولی قبل از ابن الولید معمولا این فرهنگ است، استثنا کردن وجود نداشته رضای کتابی رو انتقال میدهدن با تمام محتو بنابراین این ما توی های ابن جبله گزارش‌هایی از غیبت می‌بینیم که معارض با وقفه و اون نیوورده اینها رو و کاملا نشون میده که گزینش کرده چون نمیتونسته به لحاظ کلامی برای اونها در واقع تعبیری در نظر بگیره این خلاصه ای از بحث ما بود که البته عرض کردم یک تک است از یک بحث کلانی که ما همه این تکنیکاری‌ها رو کنار هم قرار میدیم و می‌بینیم این اتفاقی نیست در ابن جبله. اتفاقا حسن محمد سما هم همینطوره غازلی هم همینطور هستش حسن ابن علی ابن عبی حمزه بطایمی هم همینطوره و واقفیانی که در نسل اول بودن مثل کرام خسامی اونها اومدن در آثاری که پیش از وقف نگاشتن مکات خودشون رو به طور کامل و بدون سانسور گفتن و هرچقدر که واقف جلوتر رفته ذریب این سانسورهاش بیشتر از قرب شده با ارز ما تمام یه اللهم الله صلَّى الله الله الله الله. خیلی متشکر از برادر و بزرگوارم آقای دکتر مباهدی که هفت هشت دیگر به ما ارفاق کردند تا بود برم ممنون از ارائه بسیار خوبتون در معایب کسانی که با اطلاعات بسیار زیادی یک بحثی رو ارائه میکنن اینه که مخاطب باید همه اینها رو بگیره و دقیقا هر فضای هر بحثی رو در جای خودش منقع فهم بکنه و نتیجه ای که مد به نظر استاد هست رو هم ارائه کنه من اجازه میخوام قبل از این که از منسر برادر بلوگار مناقعی فهمانسطاییش استفاده بکنیم یک جنبندی رو به قدر فهم خودم عرض بکنم از من بحث جناب آقای موحدی که بحث نگارش کتاب در رابطه با مهدویت و به طور خاص و عام و به طور عام در رابطه با مهدویت و به طور خاص در رابطه با غیبت از مواردی که مسبوق به سابقه است در بین مذاهب اسلامی که عرض کردیم در میان نابوسیه و کیسانیه و واقفیه علاوه بر امامیه ما می بینیم که کتاب هایی در رابطه با بحت نوشته شده اگر بخوام فرمایشات استاد رو خلاصه بکنم انگیزاننده اصلی این که ایشون و دوستانشون در این فضا دارن در یک کلام ای که بخش اولش در قالب مقاله ای تحت عنوان با سازی کهانترین قیبتنگاری واقفیه و تحلیل کلامی روایات آن خودش رو نشون داده و این مقاله به عنوان رتبه نخست دهمین ده همایش ملی حدیث پژوهش هم جایزه گرفته که نمیدونم جایزه رو امروز با آقای رحمان ستایش تقسیم خواهند کرد یا نه یا این مجری، این وسط یا دبیر چی است یا بقیه حضار محترم اونم برای که فضا از اون فضا بیرون یه مرد داری بقیه دوستانم بهشون یا چای بدید یا از خواب بیداریش میکنید تا من چکیده مباحث رو عرض کنم خدمت دوستان این تعریف بودم عرض بکنم خدمتتون که واضحه که باید اشاره کنم <تصفيق> ببینید اونچه که مد نظر هست یک اتهامی بر علیه شیعه امامیه وجود داره نسبت به این که گذره از امامیه به اصناعشریه بعد از قیبت امام اصر علیه السلام شروع شده و طبیعیه که ما اگر مستندی نتونیم ارائه کنیم مبنی بر اینکه هم اولا امامت دو و من مهدویت و سه ومن در آموزه های عقیدتی شیعان اصر حضور وجود داشته عملا ما تسلیم اون نظریه ها و بهتره بگم فرضیه هایی که بعضی از افراد در قالب نظریه می میکنند باید بشین پس جناب آقای مبهدی تلاش کردند بگن از صفح فلقیبه آقای عبدالله ابن جبله درسته که یکی از منابع نخستین واقفی هست ولی اگر ما به شعن دوگانه ایشون در رابطه با تعلیف و انتقال توجه کنیم می بینیم که ایشون وقتی صحبت از انتقال داره سانسور نمی کنه چیزی رو گز... گزینشگری نداره فلذا هم به امامت عیمه اصناعشر اشاره می کنه، هم به محتقیت به طور تاس، هم غیبت و هم اینکه که امام عصر علیه السلام زنده است و نمرده است و همواره جوان است تا روزی که انشاءالله ظهور کند اما وقتی که تألیف میکنن یعنی یک تک دارن با این عنوانی که ارز شد گزینشگری موافق مباحث کلامی واقعیه رو در نوشته های ایشون میبینی پس ارزش زحمتی که دوستان از این دو طریقی که کشیده اند که فضای روایاتی که ایشون در انتقال و تعلیف گرده هم اوورده رو با هم مقایسه کردند در این دو جدول اخیر اهمیت بحث رو برای ما روشنتر میکنه و امیدین که انشالله بقیه پروژه فاخری که در پی انجامش هستند هم هرچه زودتر به بهترین نحو انشالله به نتیجه برسه و ما شاهد شکوفایی مباحث مهدوی در اصر نخست باشیم انشالله در این بخش از محضر برادر بزرگوارم آقای رحمان ستایش استفاده میکنم کنم اینکه که باز بهجاست که از همه عزیزانمون که شرف و حضور دارن یا برخط ما خدمتشون هستیم تشکر کنیم که در یک بحث تخصصی حوصله میکنند و دقایق دیگری رو خدمتشون هستیم با ذکر سلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات جناب استاد میریم اللهم صل على محمد و على اهل محمد <بع>. بسم الله الرحمن الرحیم از سلام و ادب و ارادت در خدمت حمی عزاداری گرامی و همچنین خسته نباشید میگم خدمت جناب دکتر موحدی عزیز و عرض و تشکر خدمت جناب دکتر باقری که به حال مدیریت جلسه رو با دقت متذکریدی که من عرض می کنم چند بخش داره اولین بخشش یک مقدمه است راجع اصلا این نوع کار و اون مقدمه این است که یک تعبیری در بین مستشرقان متعارف هست و معادل های مختلفی براش تو فارسی در, در نظر نگرفته که شاید به نظر من به جهاتی مفهومترین و روشن معادلی که ما میتونیم براش در نظر بگیریم مسئله حجیت تاریخیه. مسئله حجیت تا اسم کلمه حجیت رو میشنویم زود همین حجیتی که در مباحث حوزه‌ای یاد گرفتیم و بحث استناد و اعتبار استنادی قابل یه وقتی میشه تعبودی باشه یه وقتا میتونه هویت های عقلایی و امصاد موارد باشه مدن نظر. لکن هویت تاریخی این گونه نیست. اصلا جنسش چیز دیگه است. در هویت تاریخی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه مذهب و امیت و ملیت و امصاد موارد به نام این است که اسناد تاریخی و اون چه که در واقع به لحاظ تاریخی قابل پذیرش هست که خودش که متعددی داره حتی ممکن است آثار باستانی باشه ممکن است که کتاب باشه ممکن است که مثلا فرش برین نوشته هایی باشه که بر روی مثلا پوست آهو و امثال موارد یا حتی روی اسطفان ها و چی و چی و چی به جام مونده این مستندات تاریخی در واقع می تواند کمک بکنه کسانی رو که اساساً نگاهشون به مسائل نگاه مذهبی نیست نگاه خالص و تعلیم تعبیر میکنن نیست با این نگاه به مسائل نگاه نمی کنند و صرفاً نگاهشون عقلی و علوی است اونها بتونن در مورد این مسائل تحلیل داشته باشند. امروزه در مهمترین آموزه و مهمترین نهوری که برای مستشرقین قابل توجه همینه یعنی این جهت باید تأمین باشه پس مثلا فرض کنید برای مستشقی که معلوم نیست اصلا دین داره یا نداره یا یهودیه یا مسیحیه یا هر دین دیگری که داره برای اون این مهمه که شما یک سند تاریخی ارائه بدید که فلان فکر فلان اندیشه فلان کلام فلان ایده وجود داشته در قرن اول هجری یا در قرن دوم دو هجری یا هر زمان این جهت رو باید در شروع کنید این که شما به لحاظ مذهبی اساسا اون رو قبول دارید یا قبول ندارید برای اونها مهم نیست و این جهت اهمیتی نداره چون اونا بحث مذهبی نمی کنن. بحث تاریخی در واقع مدد نظر اونهاست باید نگاه مسائل رو تحلیل بکنند لذا در حوزه های ما یکی از ضرورت های عصر حاضر است که دنبال این باشند که این حجت های تاریخی رو پیدا کنند و میزان حجیت اونها رو مورد مطالعه قرار بدند و در اختیار بذارن این خیلی مهمه و حتی الان راهی که راه ضربه به اعتقادات اسلامی و الان در دوره معاصر روی کرد شیعیش هم زیاد شده وجود داره همین مسئله است یعنی وقتی شما نگاه میکنید که به لحاظ تعبدی همه مسائل روشن است دوسر سر جای خودشه اما به محضی که یک نفر با دیدگاه تاریخی وارد شد و از نگاه حجیت تاریخی و صفق یک مسئله وارد شد اون وقت خیلی از اوقات ما نسبت به این مسائل اهمیت نمیدادیم توجه نکردیم و احیانا در واقع یک خللی در اونجا پیدا میشه و سخت میشه در طول همین چند سال اخیر شاید بگیم یکی دو دهه اخیر چند تا کتاب با همین رویکرد کرد و تاریخی به مسائل نگاه کرد و زور و بروز پیدا کرد خیلی در واقع کسانی رو ناراحت کرد و به چالش کشید و به مشکل کرد اینها همه به خاطر این است که با این سبک نگاه و با این سبک مطالعات خیلی آشنا اشناه لذا اصل این مسئله برای ما مهمه که اسناد تاریخی من رو در حد حجیت مورد مطالعه قرار بدیم و شناسایی کنیم و اونها رو در واقع مشخصا در اختیار کسانی که اون مطالعه بکنن قرار بدیم و کاری که جناب به دکتر موحدی انجام دادن خب یک بخشی است که از نوع و جنس این نوع کار هست یعنی ما لازم داریم که اسناد گذشته خودمون رو منابع گذشته خودمون رو بازسازی و بازشناسی کنیم وضعیتی که در دوره مرحوم نجاشی مثلا به وجود آمده بود که اشکال کرده بودند به استادش یعنی سید مرتزا که لا صلاف علکمون و مصنف اون زمان در حد همین بود که ش... یک کلامی گفته شد اما امروز هم یه چیز شبیه اون وجود داره بلکه تفاوتش با اون زمان اینه اون زمان می گفت که سلفتون چیه؟ مصنفتون چیه؟ اسم ببرید شاید همین مقدار کافی بود اما امروز این مقدار کافی نیست یعنی باید بذاریم دلو چشمشون و مشخصا و معینا بگیم این است این است این است ولو که طبیعتا همچنان که همه ما از آن داریم نمیتونیم ادعا بکنیم همه اون کتاب بازسازی شده به عینه بدون یک کلمه کمتر یک کلمه بیشتر همان است که فلانی نوشته اما اجالتا خودش با توجه روش هایی که انتخاز میشه یک نماد است و اینکه وجودی داشته پس بنابراین این ادعای محض نیست و باید اون جهت مورد توجه قرار بگیر این یک نکته مقدماتی نکته دیگری که خب از جهت دیگری به همون مربوط میشه بحث تاریخ انگاره هاست این هم خیلی مهمه مزور از تاریخ انگاره ها, انگاره ها یعنی ایده ها اندیشه ها و نظریاتی که وجود داشت، تاریخ این ها به کجا هر میگن بحث اوقات امروز میبینید در حالا فضای مجازی که بسیار زیاد هست در مکتوبات هست در مقالات هست این سوالات مطرح می کنند که فلان قید، فلان حق، فلان مطلب، فلان ایده و اعتقاد از کی به وجود آمده؟ اینو فلانی ساخته مثلا حتی حب در مورد تشیع و حال این حرف رو چون اسم کل باید بین ها اینها, اینها معتقدن به این که در خیلی دوره متأخر تر از اون چیزی که شیعه ادعا میکنه در واقع پا گرفته و تشیع رو مثلا قرن 4 و پنج یه درست کردن اینا هست این حرفا گفته میشه اما پاسخ اینها باید متناسب با همون روشی باشه که اونها ادعا کردند نظام ما نیاز داریم به مطالعه تاریخ انگاره ها یعنی انگاره غیبت قیب انگاره امامت، انگاره اصلا اصلاح عشریت انگاره مهدویت خیلی انگاره ها داریم اینها باید تاریخش دقیق منقه و محکمکاری بشه و الا قطعا روز به روز شبهات جدیدی رو خواهد شد که تا این کارا رو نکنیم جواب نمیگیریم امروز فقط مخاطبان ما مؤمنانی نیستن که تعبدن و از روی اعتقاد وقتی بهشون میگن مثلا روایت از فلان امام است تمام و این رو معتقد میشن نه این کسانی که عرض کردم و اشاره کردم هم بسیارند اگر کسی پیگیری کنه مراکز مطالعاتی قلبی ها رو بر روی اسلام تشیع و انصاریم موارد میبینه چقدر مؤسسات متعدد و کسانی که با روش های اونها در کشورهای اسلامی دارن کار میکنن اونها هم یعنی مستشق حساب میشن اینها دارن کار میکنن و نکاتی رو مطرح میکنن اینا رو وقت دادن میبینه تحریک میشه که واقعا باید جوابوی این مسائل باشه و از پس این مسائل بر بیاد لذا این نوع حالا البته در یک زاویه خاص آقای دکتر موحدی وارد شدن در مسئله غیبت هم هست حالا خود مهدویتی که عامم نیست مهدویت مسائل بسیار متعددی داره و مسائل متعدد از انواع اعتقادیات غیر اعتقادیات اینها همه قابل مطالعه است و بلکه واجب است به نظرم که به این مسئله احتمام ویژه و بیشتری مؤسسات مراکز آموزش عالی ما انجام بدن و روی این جهت تمرکز بیشتری داشته باش. لذا ضمن تقدیق از انتخاب موضوع توسط جنبایی دکتر موحدی واقعش این است که پیشنهاد و تأکید من بر این مسئله است که به خصورت خاص در این دانشگاه که حالا اسم دانشگاه عدیان و مذاهب هم داره و مسئولیت مستقیمی با این عنوان متوجهش میشه رو این جهت بیش از بیش کار بکنن و در واقع احتمام بیشتری داشته باشند. خب این مقدمه بحث من بیان سراغ کار جناب آهی دکتر مبهد همچنان که عرض کردم اصل موضوع و محوری که مورد توجهشون بوده بسیار بسیار قابل تقدیر و مهم است. و از این جهت باید تقدیر و تشکر کرد. اما چند نکته دیگر در مقاله ایشون و در نوشته ایشون هست که اونها هم باید مد نظر قرار بگیره. الانم در گزارشی که ارائه کردن در گزارش کوتاه و فشورده خودشون که به سرعت ارائه کردن برخی از نکات گفتن مسئله بازسازی متون بسیار همچنان که اشاره کردن مهمه ولیکن مسئله مهم است که قواعد این باستازی چیه یعنی چجوری من مطمئن بشم بعد از جستجو و بعد از پیدا کردن روایاتی که مثلا منسوب است به یک مؤلف واقعا این احادیث احادیس کتاب اوست و اهیانا یعنی منقولات یا همون نقش ناقلی توش نباشه این جهت خب از مسائل بسیار بسیار مهم است که انسان بتونی یک جوری با قوائدی عمل بکنه که به شکل اقلائی و متعارف مخاطبان خودشون رو مخاطبان خودش رو اقناه بکنه که این متنی که من پیدا کردم حالا مقدارش به شکل قطعی و مقداری هم به شکل محتمل احیاناً از اون مستر بوده بخند الله جنابانی دکتر مراهدی به جوانب مختلف کار توجه کردن ما در یک که در دارال حدیث دفاع شد و من راهنما بودم رجب منابع اصول کافی در واقع کار میکردیم تو اونجا 20 تا قاعده درست کردیم که از این قواعد میشه به عنوان قینه استفاده کرد در این حال وقتی که نتیجه نهایی بخواد در ریان نمیتونیم بگیم که همه این 20 همه جا هستن و همیشه هستن نه مقداری از اینها در یک موردی هست در یک موردی نیست اما باید به یک وسوق و غلایی دسترسی پیدا بکنیم و نهایتا اون رو نتیجه بگیریم اما واقعش همون زمان هم فیلی سال پیش بود همون زمان هم راجبه خیلی از اون قوائل ما یک اطمینان صد درصدی نداشتیم یعنی نیاز به کار بیشتر و دقت بیشتر وجود دارد. از محاسن کار جنبای دکتر ماهدی در این مقاله این است که دقیقا روش کار رو مشخص کردن یعنی روش بازسازی احیانا مشکلاتی که میتونه تو هر کدوم از اون قواهد وجود داشته باشه که باید فکری به حال اون کرد این رو هم تذکر دادن و مورد توجه قرار دادن این بسیار بسیار مختنم خب همچنان که خیلی با سرعت هم نشون دادن ولیکن اگر مت در خدمت عزیزان بود این رو به راحتی و بهتر اذعان می کردن از ابتدای اسناد یعنی از ابن اقده تا عبدالله بن جبله شما ملاحظی می فرمایید که چهار تا راوی پشت سرهم هم مکرر و تقریبا در اکثرش حتی شکل قصد بردنش یک جوره و تفاوت آنچنانی نداره در همه این روایات وجود داره و همه هم موضوعش اتفاقا با اون موضوعی که در فهرست ها گزارش شده هم خان و همسانه و قوالد و ذوابط دیگری هم باز هست که این جهات کچمین و و تا وجود زیادی ما یقین میکنیم که از اون کتاب گرفته شده اما این که اون کتاب همین است و نه این قطعا نیست یعنی لاوغه میتونیم بگیم که این یک بخشی است که مطمئن نیم از اون کتاب است اما همه اون کتاب قطعاً نیست این کار بسیار خوب و دقیقی است که انجام داده اما نکته دیگری که باز خیلی بهش احتمام کردن و توجه کردن همچنان که در گزارش ملاحظه کردید بحث شناخت محتوا بود شناخت محتوا بسیار بسیار مهم یعنی دقیقا این که چه چیزهایی را آوردن در اینجا به و در واقع در تعلیف عبدالله ابن جبل است و چه چیزهایی را نی آوردن و احیانا باشون سازگار نیست این جهت رو خیلی خوب معین کردن و مشخص کردن لذا از نظر مختبایی هم واقعا زحمت به سزایی را کشیدن اینها ها در واقع که کار ایشون داره و ارها نب جاهات متعددی داره و یکی از جاهاتش هم این است که محاسن و کارکردها و مناسبت هاش رو توجه داشته باشه اما در رابطه با چند مطلب که در ضمن صحبت ها آمد من نکاتی رو متذکر باشم در رابطه با مسئله استثناء استثناءاتی که بزرگان ما کردن شواهدش هم بسیار است. از باب این بوده که راوی کذب نباشد نه مسئله صحت و اعتباره. و معناش اینه که اگر یک روایتی رو مثلا غلط نفت کردن این روایت رو من روایت نمی کنم. ولو که تو اون کتاب هست حتی در همون جایی که لاقل کتاب هستند اون راوی کما این که در موارد بسیاری رو شاهد هستیم راوی میگه اجازه میدم نقل این کتاب را به فلانی الا مانکانفیه من غلوون او تقلید یعنی اجازه را صادر میکنه اما غلو به را نمیده اما چرا؟ چون نقل قلوب و نقل دروغ هم دروغ است اگر که بدون توجه دادن به این که این دروغ است کسی دروغی را نقل بکنه و روزی اون کسی سر کار بزنه مثلا این هم دروغ است برای اینکه جزو دروغگویان به حساب نیاد و استسلام میکنه این مفهوم نداره که مابقی صحیحان مفهوم نداره که ما بقی معتبرن مفهومش اینه ما بقیه دروغ نیستن یعنی خبرند گزارشند. این خبر یحتمل لسر یحتمل لرکس و اساسا استثناء یک دلالت این شکلی در کلمات محدثان نداره شایدش هم است که حالا متعدده اما کلامیست که مرحومه شیخ توصی در عده داره در اونجا وقتی که اسناف روات رو ذکر میکنه میگه و عمل و در اونجا ذیلش میگه که استسلوا ملفهارسهم ما رواه این اشخاص این اشخاص قلاد اگر روایت کردن اینا از فهارسشون استثناء کردن چه کل کتاب را استثناء کرده میگه من تمام کتب فلانی را اجازی بودم الا فلان کتاب را یا این که از یک کتاب بعضی از روایاتش رو استثنا کردن حکلاتش هم همون قلوبه نه جهات دیگر و این جهت اونجا در وقت خیلی مدر نظر نیست نکته دیگری که در این جهت باید مورد توجه قرار بگیره مسئله ناقلیت و مؤلف بودن در مراحلی از تاریخ نقل حدیث خب همین شکله که افراد بدون هیچ دخل و تصرفی کتاب رو فقط همینطور دست به دست می‌کردن و رد و بدل می‌کردن اما در برهه از زمان اینطور نبوده بلکه اون کتب می‌شدن مصادر برای نویسندگان بعدی و اینها در تعلیفات خودشون ادراج می کردن داخل می اما به همین شکل یعنی گزینش می برخی از موارد رو می آوردن و برخی رو نمی آوردن لذا ما باید در رابطی با مسئله اجازات و انتقال احادیث قبل از قرن چار و هجری و بعد از قرن چار و هجری حساباشون از هم جدا بکنیم اجازات پیشین با اجازات پسین یک سال نیستن یک کارکرد ندارن در یک اجازه ای ابن ادریس به کسی اجازه میخواد میگه تو اجازات بهار هست اونجا میگه که استجازنی فلانا ولم عدر ما فائده تو نمیدونم فائده اجازه چی یعنی دیگه اون کارکرد رو نداره اما در دوره پیشین تو نیست یعنی قبل از شیخ توصی اگر یک کسی ب... آ... بدون اجازه چیزی رو میخواست نقم بکنه محل شبه بود معموم نجاشی در چندین جا اشاره میکنه به مسئله اهمیت اجازات برای که در دوره بعد ما این رو نداریم لذا حساب اینا رو باید از هم جدا کرد یعنی ناقلیت و معلفیت در جاهایی بند تأثیر داره نقش داره اما این نقش ها به همین سادگی هم نیست که بگیم مثل زمان ماست یک کتاب رو برداشه اجازه داده اجازات امروز جز و تبرک هیچ اثری ندارن بگیم در قرون اول هم بوده نه اینجوری نیست شواهدش هم بسیار این هم نکته دیگری که در اینجا باید بند نظر قرار داد ولیکن باید در مجموع تقدیر کنم از اصل این کار و اینقدر این کار در واقع نکات مثبت و اون که ارائه داده و نتائج که گرفته بالاست که نکات من در برابر اون خیلی دروقت جلبه توجه نمیکنه و لذا باید به ایشون خست و بگیم و تشکر کنیم از زحمتی رو که متقبل شده صلواتی محمد محمد و آل محمد و فرجان. خیلی ممنون و متشکریم خیلی متشکرم از دقت نظر جناب استاد و نکاتی که به نظر میرسه که به ویژه در این مجموعه ما باید سرمه چشممون بکنیم با توجه به تعاملات بین المللی که این دانشگاه داره نسبت به روش های اکادمیک بین المللی که بتونه پاسخگوی شبهاتی باشه که از اون سمت متوجه ما هست من ضمن تشکر یک نکتهی رو میخواهم از کلامیشون وام بگیرم و عرض بکنم خدمتتون که اون چه که در پژوهش‌های های امروزین ما بشه دت خالیه و امروز هر دو بزرگوار نسبت به اون تاکید معکدی داشتن روش روش شناسی پژوهشیه عموما در مجامع آکادمیک روش شناسی پژوهش رو همون روش تحقیق فهم میکنن در حالی که هر کدوم از پژوهش هایی که در های گوناگون باید در حوزه های تخصصی مختلف اتفاق بیفته یک روش خاص خودش رو داره روش تاریخی به نوعی روش های تحلیلی به نوعی و استهزار دارید امده مباحثی هم که در, در علوم انسانی و اسلامی ما باشون مواجه هستیم روش های کیفی هستند که مستلزم دقت نظرهای بیشتری هست که از روش شناسی پجوهشی با سازی منابع نخستین از دو استاد میشه نشالا استفاده کرد و امیدوارم که پایان نامهی هم که جناب استاد رحمان ستاییش راه بودند. بودن گام نخستینی باشه برای قواعدی که در با سازی منابع نخستی میتونه مؤثر بیفته. خیلی متشکر از شما عزیزان و حوصله و سی صدرتون سی دقیقه برای شما در نظر گرفتیم و تا ساعت چهار هر کدوم از عیزه ساعت پنج بله هر کدوم از عیزه هر ای که داشته باشن من یه اقواضایی که دارم تو این جلسه مقداری خرق عادت کنیم معمولا عاعه اساتید و مستمعین گرام از اساتید و دانشجویان در جلسات پیشینی که ما حضور داشتیم سوالاتشون رو مطرح میکردن میگفتن آقایون یه جا جواب میدن. آقایون هم گاهی یه خط در میون جواب می دان یا, یا جواب نمیدادند. ما برای اینکه این اتفاق نیفته بله مشخصا هر سوالی رو که میشنوییم. ان الله جوابش رو از اساتید بخوایم تا برسیم به این که بلکه ان شاء الله همه سوالات جواب داده بشه تو این نیم ساعت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال اولین سوال میرین اللهم صل علی محمد و آل محمد خاتم سلام علیکم مع علیکم سلام تشکر بسیار تشکر کنم از اساتید گرامی، استادان و ای دکتر و ماهجی که نکات بسیار ارزشمندی ایراد فرمودن. من قصدی که داشتن این هست که در رابطه با اون مواردی که عبداللهم جابلی در اس کتابش نقل می‌شه شما هم شواهد مثلی فرمودید، هر شواهد صدق. در رابطه اون که فرمودید این نقل هایی در منابع امامیخ هست و از کتاب اون نقل نمیشه اینجا شواهد سندی آیا صرفاً از جهت تطبیق و منابع فهرستی هست که اونجا ارگلاه اونجا ولی صرفاً طریق هست یا نشواهد سندی دیگری هم وجود داره برمون شمیه اشاره خیلی موشکرم من تشکر کنم از اصداد گرامی که... دارو کارولی کردن و لطفاً همه آنچه که در این مقاله و کارهای شبیه به این هست در واقع اون چیزی که ما از خدای دوطور به واسطه بزرگوارمون آموختیم بله عرض مخزن اینورمیتون که در مقاله اصل مقاله یعنی ما قسمت مهم دو تا قسمت از مقاله رو ما ارائه نکردیم چون واضحه که همینم فکر می‌کنم با سرعت نزدیک به نور من گفتم تو تونستم بچل دقیقه برسید یکی روش بازسازی که در مقاله به طور خلاصه آمده و انشاءالله در فصل دوم و سوم اون کتابی که نام بردم به طور کامل خواهد آمد و نقطه دوم این که اونجایی که ما گزارش هایی که از عبدالله بن جبله داریم و نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم که این ها از کتاب اوست این هم به طور کامل در مقاله آمده که به چه نحوی هست بعضی هاش نشو دهنده همون طریقی است که در فهارس آمده بعضیش اینه که مثلا فقط یک نقل با این سلسله سند شده شواهد و قرائنی در اون مقاله آمده که نشون میده که خب مثلا اگر این در کتاب ابن جبله بود لازم بود که با طرق ای هم گزارش بشه کسانی که کتاب در اختیار داشتن گزارش بکنن یا بیشتر از یک سند به ابن جبله به این شکل داشته باشین این قرائن کنار هم دیگه قرار به این چه میرسید که ما هیچ دلیلی نداریم حتی یک زن نمیتونیم میتونیم پیدا بکنیم که این روایت که از عبدالله گزارش شده در کتاب عبدالله بوده که حدود فکر میکنم در یازده روایت هستش که ما نسبت به وجودش در کتاب عبدالله هیچ قرینه و شاهدی نداریم اونها رو گذاشیم در شمع انتباه که بعضی از اینها رو یقین داریم که در کتابش نبوده چون در فهارس گفتن که طریقه بخی رو یقین ندید یه نکته من خدمتتون بگم همیشه هم اینطوری نیست که با این روش ها ما بتونیم باستازی بکنیم که آیی دوتر هم بهش اش اشاره فرمودن اتفاقا ما در مورد حسن ابن محمد ابن سماعه متوفای 263 مهمترین شخصیت نسل سوم واقفه که او هم کتاب به داشته و اتفاقا روایت های قیبت هم از گزارش شده یک مقاله ای رو در حال نگارش هستیم تحت عنوان دو اجمال دو معزل اجمال که ما به خاطر وجود دوتا تا با و اینکه روایت هایی داریم که با سلسله سند یکسان از ابن سماعه گزارش شده در غیبتم هست شاید همه چیز مهیاس برای اینکه بگیم او در کتاب الغیب باشه باز به خاطر بعضی معضلات نمیتونیم این اطمینان رو حاصل بکنیم که به طور جدی حالا در همون مقاله که این شاءالله منتشر خواهد شد گزارش همین بود لذا عرض هم اینه که خوبه که حالا دوستان اصل مقاله اگر ببینن تا حدود زیادی این ناگفته های توی ارائه در واقع مطرح شده یه سوالی که جوارش خودم بلدن بس. <تصفيق> در با روایات عبدالله ابن جوالله غیر از موضوع غیبت و اسنادی که داره اونا رو استخصار کردید مناسبت سنجی کنید <تصفيق> فقیقیاشو خیلی استاد فقط نماسه کلامی شن همون گفتم این تکمله است اگر این کار در خیلی به الحمدلله همدولا اینقدر همه چیز خوب بوده که آی دکتر. بله حتما همه طوره یا همه چیز خوب بوده یا همه چیز خوب بوده همه چیز خوب بوده بله اگر که نکته هست که خدمت عزیزان هستیم <تص> عزیزان برختمون هم سوالی دارن یا خیلی میتونید ببینید دو جا با اجازه من سوال دومون نمیت کسم شما این درست از فجوهش ها در مورد کدان از دیگر راقیان با ببینید واقعیتش اینه که من پاسخ بگم دیگه قصخاری میکنم واقعیتش اینه که من کار بازسازی رو قبلا راجبی کسایی دیگه هم انجام دادم ولی با این متد نبوده یعنی اون متدی که داشتم مثلا راجبی کار ابوسعید رواجنی خودم الان ناقلشام یعنی خودم میتونم یکی بیاد اون مقاله من ارائه کنه من خودم نقدش کنم سابقا کار ابوسعید رواجنی رو انجام دادم ولی کاملا به اون روش الان مخالفم و یک روش بینا بین قبل از بلوغ به این مرحله هنوز نرسیده بود کتاب الملاحم کبیر محمد ابن جمهور امی رو باسازی کردم که توی سه چهار شماره پیش در علوم حدیث چاپ شد سازی کتاب الملاحم کبیر که خب محمد ابن جمهور میدونید که کار شما هم هست دیگه رمیه به قلوب هم شده و اینها اتفاقا اونجا ما نکاتم راجعش گفتگو هم کردیم راجع به بحث قلوب بشه و نشون دادیم که انتسابش به قلوب هم اتفاقا صحیح نیست حالا در خدمتیم اگر بازم سال دیگه یوش سال خیلی خیلی ممنون از محبت همه دوستان و تشریف فرمایشون انشالله که متعجب باشید و مورد این خاصه خاصی امام عسلی صلیب و سلام و خدا ما رو از قبیل خدمین در این دوران بحرانی به امر ولایت اون حضرت مقدر و مقرر بفرمایید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دکسو تے گڑبی اینا سر و موبائل و گونیش بزرگ باشه من چلو چاش برید اول تو حتما شما تشریف با ماکسیم فایده که ساعت میخواد آقای عابد تشاغی قابل شده بفهمید.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 آقا این شده بربره رو بشه. آجا با آقای اکپیدگی هم یک سر ستشون بوده. آقای اکپیدگی من بسته. برای بوردنه با گونه. همون یه دیمه کافی بود بیگه. شما معلوم نمیخوام آدف دادر نمی‌کام ببرم. همه ما رو می آقا روزی که از دانشگاه زنیم چجوری ما عکس میگیرن آقا ما به خدا میگوایم چطور سر کلاس ما درس نداریم مثلا ما دلیل نداریم آقا هر جای وقتیم با هم بریم شما ما رو شکنجه نکنید ما حاضر هستیم ما ماشاءالله نشون شد ما موضوع مشهد سنندج یاری دارم میگم Ya, <laughs> me حالا اولاً این کار تکمیل شده حالا ما یه دستور آماده نداریم مثلا مثلا اونم ساده بده یه دوره کل و نگاهش دو داریم بعد از فقط در مو وقت ما نیست این یه نمونه که انجام این اگه همون من نظر من اینه که نیست اولش فرضیه که این بسته به اینه ولی واقعاً که فرضیه که این بسته اقتصاد <تصفيق> و جامعه نه یه بنون نیست که حالا من وسایلمو جمع کردم ببین من ما در خدمت شما هستیم توی اون چیزی گفتن و نقد داوری شما من خود اول زکی شو داخل یه مقاله دارید در واقع علی صافی آقای ملکیان درو بود مشخص که نپذیرفتن حالا نفهمیدم آقای عابد آقای عابد ناقل مقاله ای آقایی تیز چکستی؟ همین زحمتی که آقای لحنسته تاش برای شما کشده شما ملیبیشون مجبور آخه ما خودمون معین مقاله ایشون بیدیم من خودم تایید کردم به شما نومت مقاله شما دفاع گفت بیمونم نقدم بکنم نه. شما مثلا این دو تا پوش بهش بده این مقاله شما تایید کن هر, هر یک کلمه آقا پوشه به مسلم که آیزنی آیزنی آیز اصلا درکش یه بحث دیگه ای بندازید. خیلی عالی. اصلاً مقاله شما جالبه. مقاله شما رو من خودم بهش نمره خوب دادم. بعد میگم شما نقدش کن. میگم بگو که مقاله شما رو پذیرفته به رده است. شما رتبه اول بدید. آره، میاد رتبه اول نه نه نه پنج نه پنج نفر رو بدون رکوردر فراموش نکنید من شما